سر از کمند تو سعدی به هیچ روی نتابد حسیر خیش گرفتی به کوشش آن که تو دانی با کسب اجازه از هیئت رئیسه محترم جلسه و حضار محترم مطالبی بسیار خلاصه درباره ممدوح محبوب در غزلهای آشقانه سعدی عرض میکنم. و قبل از اینکه مقاله را بخوانم خانم یه توضیح مختصری خدمتون از بکنم که غزل های آشگانه سعدی آنچنان که میگویند ساده هست ساده نیست غزل به این مقاله به استدلال ریاضی نوشته شده با شواهد غزل های سعدی ممدوهان خودش را به صورت زنان مجسم کرده الان من نمیدانم این درویش صوفی تقیه متکلم چه لذتی می برده است از اینکه این زیبایی را به وجود آورده و این ورقی بر تاریخ ادبیات شما اضافه خواهد کرد که غزلیات عاشقانه سعدی همه‌شون درباره وصف دختر و عشق زمینی نیست قصیده های متیلی سعدی حکایت از دوعا و پند و مسلح دارد و مدای و قذاافگویی در آنها نیست. و او خود بر آن باور است که مدیح سرایی شیوه درویشی نیست و به زبانی بسیار ساده به ممدوح خود میگوید. مدی شیوه درویش نیست تا گویم مثال بحر محیطی و ابر آزاری به بندگی سر تاعت بنه که بر به رقعت از سر گردون کلاه جباری چو کار با لحد افتاد هر دو یکسانم بزرگتر ملک و کمترین بازاری هزار سال نگویم بقای عمر و باد که این مبالغ دانم ز عقل نشماری سعدی در متح فرمان روایان و کارداران از خدا میترسد و به خاطر نان آبرو نمیدهد و مرگ را پیش تایتی از بیماری بهتر میداند. جماعتی شعراء دروغ شیرین را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 کنایه و معنی این سخن را که میگوید از امو بشنو خوب میفهمند جهان سالار عادل انکیانو سپهدار عراق و ترک و دیلم چونین پند از پدر نشنوده باشد الا گر هوشمندی بشنو از ام و در این بیباکی ها و نصیحت گفتن ها بر آن باور است که سخن درشت اثری بهتر دارد و خطاب به شاه میگوید من اگر درشت نگویم تو نمیشنوی گوش کن دنیا نه ارزدان که پریشان کنی دلی زینهار بد مکن نه کی... که نکرده است آقلی باید که قهرلوت رو بود پادشاه را ورمه مویسرش نشود حل مشکلی این پادشاه می‌گند که همه رفتن، تابوت تو را نساختند بر رفتنی هستی می کاروان برخط تو قاهی موگیم بود ترتیب کردند، تو را نیز محملی گر من سخن, سخن درشت نگویم تو نشنوی بی از آینه نبرد زنگ سیغلی شی سعدی از اینگونه گونه پند و دعا و سنا گفتن نیست، خرسند نیست و اما به رسم مرسوم در ایران زمین و به اقتضای زمان و خواسته دل فرمان روايان از شعر گفتن درباره پادشاهان است این گره پیچیده را سعدی به انگشت ناز هنر باز می کند، و در تاریخ ادبیات فارسی ترده اینی نگارت که سابقه ندارد و شاعری تغیی و صوفی شیوه و شگردی رازناش به کار میبرد که همه اهل ادب را انگشت حیرت بردهان میماند و گویا نخستین کسی که به راز شگفتگار سعدی پی میبرد برد حافظ شیرازی است که اگرچه خود در این بار چیزی نمیگوید و گفتنی نیز نیست ولیکن این هنر رمز ساده را از سعدی میگیرد و در کارگاه خیال گران شناس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 خیال تیغ تو با ما حدیث تشناب آب است از هیر خیش گرفتی بکش چنان که تو دانی یکی نیست ترکی و تازی در این معامل حافظ حدیث که بیان کن بدان زبان که تو دانی ما نمیدانیم غرز خازه کدام معامله است که در آن ترکی و تازی چیست و معنی مقصود از کلام خاز حافظ را نمیفهمیم، ولی که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 محتمل و ضد این است هر بیت دارای دو معنیه کاملا ضده هم است که هفت بیت من در اینجا جادداشت کردم ندانمت به حقیقت که در جهان به کی مانی جهان و هرچه در او هست صورتند و تو جانی به پای خویشتن آیند آشگان بهکمندد که هرچی را تو بجیری به خویشتن برهانی تو پرده پیش گرفتی و از اشتیاق جمالت ز پرده ها به در افتاد رازه نهانی بر آتش تو نشستیم و دود شوق برآمد آمد تو ساعتی ننشستی که آتشی بنشانی تو را که دیده ز خواب و خمار باز نباشد چلی در رمز غزل در این بیده تو را که دیده ز خواب و خمار باز نباشد ریاضت من شب تا سهر نشسته ندانی من ای سبا ره رفتن به کوی دوست ندانم تو میروی به سلامت سلام ما برسانی سر از کمند تو سعدی به هیچ روی نتابد عسیر خیش گرفتی بکش که تو دانی غزل را اگر بخوام شر بدهم با چنایات آن زمان میبرد و این زمان کافی نیست ولی اشاره کردنی است اگرچه همه اهل فضل و عدب هستند ندانمت به حقیقت که در جهان به کمانی واقعیت وقتی جمله معنی حقیقی خودش را داشته باشه معنی دیگری هم در توی داخل وجود داشته باشه حقیقت و کنایه کنایه به وجود میاد ندانمت به حقیقت که در جهان به کمانی واقعیت این صحه نمیداند او و به چی شبیه است در جهان این جمله معنی حقیقی داره ولی معنی کنایایش اینه ما درباره چسانی که خیلی خوب هستن میجیم نمیدانم به چی میمانی و درباره باره که خیلی بد هستم میجه نمیدانم به دعایت رفتی به عمویت رفتی ما چسی را که نمیشنازیم جمله دقیقا دوتا معنی ضد داره در مثلا دوم معنی اول را که خوب هستی را تایید میکنه جهان و هرچه در او هست صورتند و تو جانی هایی که به عقل راست نمیاد و مجازی است جهان و هرچه در روح هست صورت است ولی تو جانی با حقیقت مطابقت نداره ناچار میبریم به فن بیان و تشبیه در واقع بلیغ در اینجا هست یعنی تمام مردم دنیا مانند صورت هستند و تو مانند روح هستی و چون؟ بقیه غزل به ما حشم میکند که این مطلب هم خودش چینایه است یعنی این مطلب واقعا مانند روح هستی نمیتواند حقیقتا صدق بکند در باره اون شخص به پای خیشتن آینده آشگان بکمندد که هر را تو بجیری به خیشتن برهانی زیبای شلام سعدی اینقدر چند روزی در اینجا چند جلسه زلس هم صحبت میکنیم در همین زاز. که هرچرا تو به جیریز خیشتن به معمولا به معشوق می جن هر کس به چمند تو بیفتد از بین رفتنیست مردنیست ولی این میگه هرکس را تو به جیری کشتنیست و در واقع طرف او صاحب زور و قدرت از شعبیات بعد این را تعیین میکنه. تو پرده پیش گرفتی و از اشتیاغ جمال از پرده ها به افتاد نهانی تو پرده پیش گرفتی برای یک زن یعنی داری رازه های نهانی بیرون افتاد در معنی حقیقی یعنی همه عاشق هستن و دیوانه شدن در حالی که در مورد پادشاهان به گول آقای نظامی میگه ای سپرف چندوز مردانجی قول تو به قوله دیوانجی در اون گوچه که می میدی یکی را به یکی را مگان بدن اونجا قول تو هست بخصی در اونجا آقای نو شانه گرفته به چون زن رعنا شده چی سوپر میگه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 گران کسالداری بر چهره همان جمالداری بسیار هاست در مرد که از آن نتوان حکایتی کرد از این جهته میگه جه تو پرده پیش شرفتی یعنی اون معنی محتمل و این هم وجود دارد تو در گوشه هستی از مردم گریزان هستی و در شوق جمال تو ز پرده ها به در افتاد رازه های نهانی همه میدونن در اونجا چه کار میکنی تو آگنو و شانه گرفته به دست مصحف و شمشیر بینداخته مصحف و شمشیر بینداخته و عوضش ساخته نشستی هستی چه کار میکنی؟ بر آتش تو نشستیم و دود شوق, دود شوق بر آمد یعنی زمله ظاهری که شما در سعدی میخوانید و ما میخوانیم این است که بر آتش عشق تو نشستیم عشق مانند آتش به جان ما افتاده و دود شوق اضافه استاریست دود به آه یعنی از شوق آه میکشین تو ساعتی نش نشستی که آتشی بنشانی نه آمده بنشینی آتش عشق ما را بینی ولی در مورد آتش آتش از آتش ظلم و دود مظلوم احوال همه تورات معلوم آتش ظلم یا آتش فتنه گرمروان آب در روی یافتن یعنی در سخن سرد پیان آتش از او یافتن یعنی آتش فتنه این معنا در این بیت وجود داره بر آتش تو نشستیم و دود شوق بر آمد ایزاد کردی در این مملکت نشستیم بر این و دود شوق بر آمد سوختیم در این اشتیاق که بیایی تو ساعتی ننشستی که آتشی بنشانی تو غفلت داری از ما نمیایی این کار را بکنی تو را که دیده خواب و خمار باز نباشد از کردم ما معلم ادبیات هستیم یکی است که چشم خمار چشم خوابالو. ولی میگه تو را که دیده خواب و خمار باز نباشد، نه اینکه خمارالود، اصلا باز نمیشه سشمت، اونقدر شراب خوردی و اونقدر میخوابی ریاضت من شب تا سهر نشسته نرانی تنها ای که کلید رمز این قزله به نظر من کلمهی ریاضت اشتبازی و به اشک کسی نشستن دقیق از ریاضت ریاضت در لغت به معنی تربیت عصبه، اصطلاح عالم عرفان هست تشکر میکنم من ای سبا ره رفتم به کوگ دوست ندانم خیلی خوب می داند. یعنی موجه نمیدانم دانم بتون کسی برم تو میروی به سلامت سلام من برسانی سر از کمند تو سعدی به هیچ روی نتابد این غزل پندنامه ای زیبا برای صاحب زور و قدرت است که زندگی همه در دست اوست و معانی ظاهری کلام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 حافظ غزلی داره میگه که بر سر تربت ما چون گذری همت چه زیارت که زیارتگه جه رنان جهان خواهد بود تازمی خانو و مینامونشا خواهد غزلی ساختند علیه مشتب حافظ برای ریشند حافظ غزلی که حتی نام حافظ را نداره به نسخه ها اگر استادان محترم توجه بکنند بیت اول را در شرح چهار زلدی غزلیات نوشتن بیت اول اصلا معنی نداره اون غزلی که علی حافظ ساختن الان روی سنگ قبر حافظ نوشتن بر سر تپربت من بیمی و مطرب منشین تا مبوغت زلحت رقص کنم بر در عالم اسلام کسی پیدا نمیکنه که بگه البته اونجا که می را حافظ به معنی زیک خدا به کار می برد ترینه لفظی و عقلی داره در این غزل می این چیزی وجود ندارد بدون می و مطرب بر سر قبر من وقتی میه به بوی تو از لحد بیرون میام رقص کونان میام اولا حافظ این حرف مفت را نمیگه از رقص کونان به بوی چسی یا می از اونجا کسی هم از اونجا نمیتونه بیرون بیاد این حرف حرف حافظ نیست و مخصوصا بیت آخر را من در اینجا نمیخوانم گلت پیرم تو شبی یعنی علیه مشرب حافظ ساخته شده و روی سنجه از این جهت بعید به نظرتون نرسد اگر 400 تا غزل را به هم بزنید در یک چیز شریچ هستند دو تا زلف مثل اگرت رویتون کمر قدتون سر زیبایی ها در حد احترام و محبت برای زنان تعریف نکردید و در همه این غزل هایی که برای ممدوح گفته واقعا من نمیدانم این چه لذتی لذتی میبرده از اینکه غزلی به این زیبایی ساخته آدم یادداشت کردم من، حیرت همین طور، که آقای دوشتو شبانی گفتم واقعا من لذت بردم فرمودن من وقتی سعدی را نیکنم میخوام پیراهنم و چاچ بکنم چون این هایی در مت پادشاهان گفته سیله را گرفته و از نظر شرعی خودش را نجات داده برای اینکه زنان را این کار سابقه داره برای اولین بار وقتی که چندر که مطلقا در فکر این مسائل نیست تاته میشه در زنگه ها دستور میده پات. دختر پادشاه چین چنگی بزند. در اونجا من متوجه شدم این نظامی هستن تو جلسهی وجود نداشتید. یکی ایش دختر رو با قهرمانان شاهنامه مقایسه میکنه در واقع میخواد میگه که زن از همه چیز بالاتره برای اولین مار نظامی این کار را انجام میده و مهرمانه مینویسد قهرمانان شاهنامه که من در اینجا یادداشت کردم در هر حال سعدی غزلیاتش را بعد از این یک سطه دیگر به تاریخ ادبیات شما اضافه میشه با دقت می, می بینید در همه سیله خاص هست و این حدود الله را هم نگیختار که در تمام غزل های خودش در هر حال دقت بفرمایید این ممکنه تا حالا خوانده ایم و پیشی کرده غزلی عاشقانه است و میگوید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 و بلافاصله سخن را برمیگرداند رنگ آشقانه میدهد و با شیرین زبانی به شکر و شیرین نظامی جنزیه ای شاره می کند. آشق نتواند دست شو هر که می رود متعلق به دامن است. شیرین به در نمی رود از خانه بی رقیب. داند شکر که دفع مجس باد بیزن است. و در خاتمه اشاره میکند که همه سرداران و سپهسالاران شاه بر سعدی حسد میبرند که او شاه شاهبازی بر دل سعدی نشسته و سعدی در سنگ این شاهباز عزیز شده و شکار او بازان شاه را حسد او یافت شکار کلمه شاه کاملا مشخصی من در اینجا تقسیم بندی کردم در بعضی ها کلمه شاه را بکاریم برد در بعضی خود ساز و شاه یا عطابش را در بعضی نام نمیبرد ولی از صله و از اذكرائین کاملا مشخصی باز یعنی من واقعا وقتی که شرح زه... چهار جلدی حافظ را می نوشتم پیش می کردم حافظ در مشرب اصالت هنر قدم می زند سعدی در مشرب اصالت اندیشه و در این مسائل نیست و بعد متوجه شدم که